بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين و صلو اللہ علیہ وسید رسول اللہ و دائم و بحثی رو که مرموم شیع اینجا در بساید مقردار کلمات اخباری ها متعرض شدن این مسئله منشه شد که یک فرقی دیدن مباحث و اصولی ما اضافه بشه. از سرکه اصل این بحث رو، به این صورت مظموم مولا محمد این استرابادی در کتاب فوائد مدنیه خودشون مطرح کرده. این فوائد مدنیه از کلم اجمالا دو تا مطلب داره یکیش نفی و قصود قواعد اصولی که در کتاب اصحاب تا زمان این شاند هزار و سی و سه در بخواستش این تا قرنی آن مراد از کتب اصحاب یعنی مثل کتب علامه و محققه هیلی در اصول و قده شیخ سلسی و کتاب سیر منتظم یعنی ذهنیت ایشان رو با باید به اون کتاب رو اصولی و ایشان افتداعا یعنی افتداع تا امتحار من کتاب به آخر کتاب حدرشون نقل قبارد اصولی است اینکه این مبارس اصولی درست نیست و سعید نیست البته ایشون در خلال مطالبشون خب آنیا چون مدینه بودن چون ایتا در مدینه بشن مکه بودن یا واقعا شخص روشنی بوده ایشون خیلی از کلمات و آمنه را هم ایشون میشن یعنی عباراتی رو از کتوب اهل سنت میارم چه خب فرض مثلا زمان شهر بی و از شهر هستاری یا مثلا هسته مرمون نایی یا مرستان خیلی متعارف ماها الان نیست مطارف این گوضه های ما نیست این محضان کلمات احساس سنت ایشان خب زیاد بردن احساس متعرض شدن و این مسئله در کلمات احساس سنت این مفروغ و نهنه احساس به ایشونم روی مسئله ترکید کرده و سنید کردن ارجاع بدن کلمات علمای اصولی ما که الان اسماشون رو به همون کلمات عقل سنن اون مثل اینه اینا اصاب دارن عقل سنن که زنمون شهر بر یه در حقیقت به این تحته که زن بجهب نید زن نره کاملاهی بجهب این پوچه شده این اون سرده اساس از آزکار ایشون مطلبش رو از کلمات اصولین قبل از خودش مثل احلامی خب اونا خواهی باید. باید قبول بکنید کلمات احلامی تا حد بسیار زیادی مشابه یا متأثره به کلماتی که محلشون سنت در اصول نمشن مثل کتوب هاکی برای یا فخرازی و اونها هم این روزه واضحه در تلماتشون که مساله زن رو برای مشهر کجه میدن ایشان خلاصه لحظشون اینه که رو به این قوارد و یا به تقدیر دیگری رو به مسائل حقیق برای به استقرابت مشکل نیست تقدیر ایشان این شما میگرد کنیشونه عبارات مختلف بوده از حال ما هم مثل معلومشی اقتصاد در افتیاریشان نبوده خیلی شاید به اون زرافت های خلابیشان روز به خلابیشان که هم متناسبه یعنی گار روغات انسان یک محلی رو کاملا فخته میکنه حد حدودش واضحه گار روغات نه یکی هم این که ایشون تنها را رجوع به روایات تحلیبه خوصا اصرار اینشان ولی که این که در کتور عربه یا حتی کتور مشغوره هست اینا مجد از فتر به تبدیر شما اصول عربعه. و حیمه دستور دادن ما به این اصول مراجعه کنیم این اصول عربه منه شده برای مراجعه شیعه که شیعه به اصولی ریاض نداشته در فب و در شریعت و در اقوائد و در سلام در مسائل مقدر و معان و همه رو چوب بکنه به راست احله که این اصول هر بهمه و احله بید توصیح قرار شده برای میشه و اگر روایتی هم نبود اگر در حکم شارع احتیاط باید کن اگر در موضوعات خارجی اون حصول مناسب مثلا گایی استثاب جاری میشه باید اساس برایه جاری میشه اساس تحارم مثلا اساس احباهه، اساس حدیب اما در خود احکام این اصول ترتیبی جا نمیشه اختیاریه این, خلاصه, یه این کتاب. کتاب یه خلاصه ی نظر مبارک این کتاب البته ای ای این کتابی خلاصه نظر اینه شیطان اصل اگو راس شان انصاف مختلفه بعضی میگن خیلی سخته روی ذهن میتونه نظرش بیذینه بعضی جا نه اینا اگر فقط انبیا مثلا حجت ای عبارات همچین سلیم نیست شیخ این فهمیده که ایشون مخواد بگیر اگر قرد خب حضا کردیم از غیر راه روایی از این قرد خود گردیم خب شیخ هم برای از این قرد قرد ذاتیه محور درست از زمان شیخ با مرحوم ملا محمد امی استراباتی این طوری شد مرحوم ملا محمد امی استراباتی که این که تابونه روش شنه هست کردن در نوز منیه خالی و به اصحاب ما مثال اخباری ها امثال سابرسائل و به ها و این ها خیلی کتاب اعتناد کردن تو تواعظیشون هم تو خب تمام را بهشان رفته باشه دیگه یعنی شواش این مبضع این حرکتی بنامه اخباری. در میان و شیعه شد تفر که ایچان و من شیخ قدس الله نفسه در این چند جایی از این رسائل متعرض آقاق اخباری ها شد یکی اینجاست که الان توی تنبیه ها به شد یکی توی بحث حجیت زباهر چون اخباری ها کتاب که رو حجیت نمیدونستن شما اونجا ها متعرض شده متعرض کلمات اخباری که یکی هم آدرتن در اول منفعه خبر واحد. خیلی به تفصیل چه الان ما به بالی این کتام این ما دانتون خیلی را خیلی در اونجا به تفسیر وارد نشده من از کردم اون حجید زباده هم از و اصوله من این داره خود من خوندم عبارتیشون ایشون, ایشون بحث و اصولی اواردن تمام رو نمی کنم این نگاهی که من نعمل کردم از کردم. حتی بایی که کتاب در اختیار ساب بوده هم باید نمیده رو بعد از منوشه مثل حاجی دوری که شاگرد و حساب ساب اینها اینا و بعد ایشان مثلا ساب کفایی و عزی بیگیم که مراد مله محمد امین که پرد حاصل نمیشه مناقشات ایشان که از غیر از کتاب و سنت پرد و ظاهر مرموم شیشتین که نه اگر قط هم حاصل بشه حجت نیست یه دردار هم را که مراد مرموم الله محمدل میکنه که دو میگیه خویی هم هر دو مراد هم مراده اینه که قط حاصل نیشه هم مراده اینه که این قط حجت نیست مطمئن هست که ما میفهمیم از کلمات ایشان مراد جدی ایشان نحی اصول است. یعنی چون که در ما در کلیه احکام به دور از حتی مواددی که مثلا ما به مقرومی شرط میکنیم یا به زوادر کتاب کلا باش برگردی برقایی یه یعنی حرف ایشان اینه بسه این که قدر پیدا میشه یا نمیشه اگر پیدا شده یا این که نیست عبارت ایشان نیست حالا اینا آن به ترکب هست مروم آجی نوری در خاتمه مصدرت 12 ف... قرار قرارداد مثل معلوم صالبه وسائل شاشه مستلزم وسائل دیگه ای ای تو اتباه شان اتباه اتباه و این فایده 11 نشون داده یه فایده دیگه هم داره این فایده 11 میگه اصلا تو وسائل نمیاد که لااقا نشونه شو فوایدش مستلزم فواید وسائل چون حساب وسائل در زمان سفر نوشته بود. یه یه این مدثرات این بود که هر چیزی رو رو عدد 12 به حساب لوازم مرمون سال وسائل هم 12 فارده تو آخره وسائل داره حاجی نوری هم در مستدرتشون 12 فارده ذکره در بعضیهاش همه با مرمون سال وسائل در دشمال خدا حاجی نوری اصلا تو وسائل نیاده یه میشن این فارده 11 هم توی وسائل بحث اخباری ها نداره ایشان رو بودن ایشون فارده 11 و کلماتی از مرمون مولا محمد علمی استرابادی نرکنه که این مطنعی حاجی مجروب از ها در کفایت انتخاب میکنه اونا بریشنگ میشه که نظرش عدم باشه اونی که میشه که شور صحب ناشی عدم بسیول این راجع به خلاقه بهتی چند هفته سوی این وقت هستیم روشن بشه از کردیم که ایشان قضی از, از مسایر رو نرکرده ما به این مناساقه در کلماتیشان گفتیم که تعبیر در عقل در ادهی از کلمات بعدی ها و حتی زمان ما هم به عنوان که از عدد عربه شده یه نقدار اون ارهام داره مثلا در کتاب حاجی اعذار کتاب اصحاب مثلا در کتاب کلماتی ما افقیه داره گفتن در این ها یعنی مرگون و مرگون مواقعه از مرگون مخاله خیلی تصور عجیبیسی مرگون عقل و مرگه مرگون مولا ما هم نبینه اصلاحه اضافه کرد مساله مرسله استحسان نارم اضافه و الان توی زمان ما این چیزه دیگه بیشتر با عنوان عقل حساب میشه استحسان مثلا یا مثلا فرسونی مسائل مرسله اینا بیشتر من رضی به استحسان صحبتی کردیم از کردیم خود اهل سنت محکوم واضحی و از استحسان به درست نبیلن. اون چیزی که ما بیشنیم منحیصال مجموع همه کلماتش رو به هم دریدیم منحیصال مجموع از کلماتش در بیاریم استحسان عبارت دید نیست در جامعه اجابی افته و که دلیل شرق واضحی نداره خلاصه که مختصر و مفید. مثل اینکه خونه راه میکنن از یه یار متأخر خونه. این چه جامعه را هستند وقتی بخوای با حساب سازی شرعی درستشون گیر مثل معاملات بانکی در جامعه اسلامی جا شده. اما وقتی بخوام یه حساب شرعی و ربا و این چیزا با نشیشم با مشکل برخورد میکنه. خلاصه استفهام ایده از آداب و تقالید توی جامعه اسلامی اون عنوان جامعه اسلامی چه ها میوفته؟ این چون بخش بودش من خلاصه ما این رو با انتجام دردهی نیتوی روشن بکنیم میگن خب این رو با استحسان چون ما سحسان ها بودم من سحسان مسلمون خب اندالله هستن ها دقیقشون این کنیم این گرفتن این خلاصه از باشه زیادی از علمای عبدالسنت هم برای استحسان حساسیت نشون دادن غیر از اینکه لا اشکال کنه در مفهوم ستون قبول نکردن گروه مردم مجاربی در جامعه که ذوق بیفته اثبات شریعت با او نمیشه اون حدیث مش در شنا هو مسلمون تمد شنا هو مسلمون اینا عرض کریں۔ یه چیز خیلی عجیبه در تجربه اهل سنت واقعا میگن قول و حدیث و اینا کلام ابن مسعوده اصولا کلام صالح ابن مسعود حدیث هم نیست. ابن مسعود اصلا محله دیگره اصلا محله اجمالا بد نیست اما ارجاعش به استحصان نیست نوشته ابن مسعود میگه خداوند همون نخطی رو نگاه کرد بهترین قردها و بهترین انسانها بهتیارتر که رسول الله باشه بعد از رسول الله نگاه کرد به بندگانش بهترین بندگان به انتخاب کرد که امت رسول الله باشه یعنی اینا مرضوان نیشی هم امتی یعنی به خاطر اتباع رسول الله اینها رو بر کردین انسانها قرار داده، این عبایت از مسئولی بعد اگر همین مسلمانها که خداوند خرد اونها رو بهترین خرد قرار دازه استحسنه بود خواه حسنان اندالله چطور مثلا خرد رسول الله قیمت بر حقه پشیل داشن مارا آخو رسول الله حسن خواه حسنان اندالله چون در رسول الله هم قلوب حمومت اسلام از همه پاکر اندالله فاج اضافه اون میسون حسن و این کلام ابن ماصوده کل جمله هرج بدینی یعنی که جمله به وامر پاک افعال پاس باشه خب دو وافنین به نظر پاک خطابش بالاخره اختیار که می‌کنه اون پاکی اختیار میکنه اما این ما بچش اولا این رو میشه تو شریعت این شریعت مقدسه رو واسطه انسان و انسانها خب این اصلا کلامی میدید که بشه قبول کن و پردش هم خیلی یه حال قبول بکنی ممکن است مثلا به قول همه سنت آخره همهش منطقی بشه به نحوه اجماع سهتنامی مسلمان قبول بکنید یعنی همه مسلمان میده به همه اجماع در خواستانا قبول برن نمیتونیم به خاطر یه کلام استظهاری که از ابدا مسئول شده که اجمالاً بد نید اما این که مثلا در مطلبی در جامعه اسلامی جا رفته بعد که به شارع رجوع کنیم شوارد شرکی نداشته باشه به مجرد استحسان بین موسیقی ها قبول ای مثلا مثلا. این به استحسان بله اینه استحسان تشکیف موضوعه بیشه در استحسان استحسان تشکیف موضوعه بیشه سیگاه کشیدن نطور مفکره این هم دارد میتونیم اقل من سه سنه را سکتای ما قبل داریم دیگه همون چون این قلب پاک شدن این افکار پاک شدن اگر چیزی رو تشخیص میدن اون پاکی تشخیص میدن این واضحه در یکی از مطالبی که باز در تلمات مرحوم استرابادی آمده مسائل مرتلت که من چون یه مطلب به رو ارز کردم که مرسله یعنی مسائلی که محدود نیستن مثل اطلاح یه کلماتیشون در در اصلا مرسله به این معناست که من ارز کردم و که خودشون در مقام تفسیر البته بحث مفصلش هم که یه قیاس جور دیگری تفسیر کردن چون ما مجدودم لفظ کلمات خود اهل سنته شما ما نداریم اینا میگن مسالهه رو که ما تشریح میدیم سه جوره یا مسالهی است شاره اونا رو اعتبار کرده بس مثلا اعتبار کرده که انسان مسکر نخوره مثلا باونس. یا مسالهی است شاره اونا رو الغاع کرده ابتالش کرده مثلا خوردن شراب فیهما منافع ولناس این منافع شاره الغاع کرده ابتال کرده یا مساله موسیم نه الغاعش Warren اعتبال این یک استاله اینه من این اصطلاح باید کتاب این دفعه از کتاب بحر المحیط زرکشی به اصطلاح میکنم سطحیه ساله سطح هفت سطح سطح. سطح. سطح. دادم این کلمه رو دارم چی و ایشون این طور میگه و کلام و کلام در مساله موسیقی در ای سکت از شرقن اعتباری و احضاره احضار نیرخا نیدون اعتبار کردی یا نه و قول معبران به مساله مرسل و یلقا و به استدلال مرسل حالا اینم من تو ذهنم بیشتر اون برونم هست من نمی کنم یکی یکی برونم چون هم وقت میگیرشون بسیه برشنه نمی نداریم اون وقت ایشون مساله مرسل اینه بیردیشون هم دارن مساله مرسل مثال بارزی رو که اینا خوبشون نهاری کردن در جایی سعبی از خوفهاد گروه از مسلمان هایی دردوشون سفر برادهند استلاحایی از تطرس تطرس کفار و مسلمین بحث اینه که مسلحت مسلمین ازتازه کنه که اون مسلمان های دردو بکشید تاکی کفار پوش شده شده دویه اینها تطرس کردن به مسلمین این مهمل کرا بینیدونیم آیا شاره مسلحت مسلمین این همه ملاحظه کرده که این مسلمان هاییی که سفر براده داشتن کشت آیا که چیزا در لای لای گیر رفته یا مسائل عامه مسلمین. این مثال بارزی که اینجا زدن اینه. اما که این مرغای چی؟ اینا مثال دهن. اینا عادتاً تو مساله که مسائل ما روی تداوم بحث میشه دیگه خیلی مسائل ما مشتره بود. این احساس بیان خیلی مسائل مصلی بحث محض یعنی به اضافه تداوام. مثل اینکه نماز غریب باشه و نماز باشه. جزالری این بین ماها به تضاهم هست اینا تو خود حکم گرفتن ت... ت... اون تضاهم رو بیشتر توی لسان دلیل گرفتن میده تو خود محنا گرفتن بدون که در لسان دلیل باشه ظاهرن اطلاقات یه چیه فرق نیم برحال ایشون اینطور گفتن که در باب مساله مرسله چند مذهب هست چون از اون کتابی که قبلن خوندن میشن ملاحبشون نهار کردنم اهدوها من و که بیدیم مسلقن قول اکثری اون وقت نهار کردی که بختی که نهار از سر ازنا میشه میخلاف داریم قول دو روم. از جواز مسلقن و رابعا محطی و انمالک از مایی که درند که اسلام خودشون امام عقل مدین از شنگید میکنن این رأی نغل شده و حتی نغل میکنن قابل امام فلبرهان و افراد که قول بی هنگرد و مساله به اقرار کرده حتی جربه و اضافه استحلال و خسل و اخز المان یعنی این مساله جزدی هم باشی در جامعه میگه بله اینا مثلا بخوش این زمدان بودن هم باشیده. لمصالح،, لمصالح تختزی ها یه قالب زن با اینکه زن داره که نهی که یقین داره و این لمبیه جدله ها مستنگه میگه گفته مسالح اینطور رو خدا که این کارها بشه یه مقداری یه مقداری از این صفحه ازجاد رو به بعد رو در اصناع کلمات یک کمی بستی نیکنه کسا مالک گفته یا نگفته از خواب مالک ی ازشون فایده ای نداره در بحث ما، در، اینو ما بیشتر نمیدیم فایده نداره چنین کالایی میشود. ولی اگر یه بخشی هنر بخوی با تو مبل مکالمه میکنیم ما بحثمون که سر نقل قولیست. قولیستیم اوم اینکانت مسئلهتون ملاقات نهند. کلی من اصول شهر، او جزئی ژوئیجات بناء احکام، و الله فلا این رو به شاپینی اصل دارم. یه مقداری هم باعترمی. کی گفته نگفته چیجوری حساب میشه کلیش چیه جزیش چیجوریه چطور میشه هم شمال این قسمت هایست که من الان دیگه بازون بحث میشه. و رابعه اختیار و و بیزایی و غیره ما و تخصیص اعتبار به ما اضاکان تلکل مصلحه ضروریت هم قطعیت هم کلیت هم معتبر کرد مصلحه ضروری باشه عقلی باشه، به زن نمیشه و کلی هم باشه، موردی نباشه. این اصطلاح مسئله ضروری، بله این اصطلاحی تو کتاب‌های اهل سنت بیشتره. اه، مثلا ادبیه وقتی اهل سنت نداره. اما تو اصطلاحونو بیشتر پیش توی اصول و فقه مطرح ماده. از ضروریت در اینجا به اصطلاح خودشون ضروریات خمسه. این اصطلاح رو ما میگیم امور ضروری جامعه هست. یک حفظ دینه دو حفظ ماله سه حفظ نفس چهار حفظ نسل حفظ نسل و حفظ نسل این پنج شد ضرورت خمس روش میگه اینه اطلاق یعنی اصلا ما میگیم چی گفت فنا تو قرائت یه ضروری یعنی خمس کلی هم لفاعه دادم تمام با جمعی علموسیمی حسابه بعد برد ایشان اینطور قدیه هم که واضحه برد هم مثالشن همین مثال تطرس و تطرقراز دادن حالا دیگه یک مقداری هم شرح این عبارت داده که من دیگه الان وارد این بحث نمیشم این هم واضحه به این قسمت این قسمت به اصطلاح حلا می ایشون در اینجا نه از کنی طولانی هم نه رو که به چهار قول به اصطلاح ایشون نه انصاف از که به مرموم مولا محمد عمی هم بحث صد زرایه رو جزوه احکام و حصولی که از راه رو اونی می شه اثبات شریعت کرد خب مثال این بحثیت اح... مساله مستصد زرایه بودنش دو انصاف قضیه مثال ایشان درسته یعنی حق با ایشان هست این مسالهی که الان تصویر میشه مثلا زنی باشه فکری باشه چی باشه این به این مقدار دریبی برایش نیست این با ارجاعش میشه به همون بحث تضاهم و تشریف مساله و مساله ضروری و مقدار ضرورتش حد ضرورتش مقدار اطمینان بغم شوالدی که برای اطمینان اون موجوده و طبق اونها میشه به حساب مناسب با اون حکم کرد با که آلوان پرس می این اینجور موارد اصولا در شباهات حکمی نیست نیست مساله موصله در موضوعات خارجی نه اینکه در شباهات حکمی کلیه باشه این ها بحثی بوده ظاهره من سابقا نهارد کردم از تصریح نکردم ظاهره اینا خیال اگر ما در موردی جزگی هم مثلا حکمی بکنیم این هو فقط مسائل جز احکام کلیه الهیات نه این جزء تشریح موضوعات خارجی است مثلا تشریف الان مثلا معامله تجاری با, با فلان دولت خوبه با فلان دولت بده فلان کار با فلان دولت مثلا مناسب است این ظاهرا این جور تترس کفار و مسیحی از شبیه این مساله خارجی است در رفی در نداره این ظاهرا اینا ببینید در گفت میکنی نکتر و نکتر فنی ظاهرن اینها فکرشون این بوده که حتی در موارد جزئی هم ما اگر کلی کنیدیم در همون حکم کلی رو می یه بحثی بود که سال مسیح گردیم که آیا احکام متعلقن به توایر یا به جزئی یا اینها تصورشون این بوده که احکام به جزئی ها و اینا ما حکم کلی الازی رو داریم درسته حکم کلی هست حکم الهی هست لكن حسب تشخیص واقع خارجی که منعوت میشه به نظر حاکم مثلا تطرقیس کفار به مسلمین، خب ما میرم این حساب میکنیم به چند نفر از ما هستن احتمال این اینا بکشن چه داره؟ اگر بشه چی میشه اگر نشه تمام این رو بشه این نیست که مثلا یه مفتن کلی داشته باشیم که اگر ترد شد مثلا مسلمان رو بکشیم یا مسلمان رو نکشیم نظر انصاف قضیه این مساله مرسله که اینا میگن این مساله مرسله بیشترین کار بردش روی مسائل خارجی و موضوعات خارجیز و همه اگر داخلی در احکام کلی مثلا بگیم به طور کلی مصلحت اقتضا میکنه که شارع بیاد مثلا باخ رو اجازه بده ولی معاملات بانکی کهش معاملات عربی هم است این مسئله جامع شبه جامعه است که مصلح عنها شرعی که عرض میکنه توضیحی هم برایشش عرض میکنم مصلحت جامعه اقتضا میکنه الان نظام بانکی نظام جهانیه ما باید با با نظام جهانی باشیم و این غیر از نظام بانکی رای نداره حالا ممکنه است در مواردی هم با ما در رباب یه دفعه بحث سره اینه، یه این بحث سره اینه که ما در قبال مصالح مرتفع مصالحی که، حتی از مواردی که در شرعی میشه اصابه شرعی و اثبات عدلی شده یا اصلا واضحه، بگیم مساله ایجزا می‌کنه، بگیم اصلا برداشته میشه. یا حتی یه قدم اون طرف‌تر به قول شد اصلا شارع مقدر در این جور چیزهایی که مساله اجتماعی براتون اصلا حکم نداره، ولی چون توندست، توندتر از این گفتن. شایه اساساً حکمه میکنه این برد بوده به جامعه نظام اجتماعی اقتضا کرد که معاملات بانگی امضا بشه امضاش میکنه اقتضا کرد امضا نشه امزاش میکنه این چیزی نیست اگر مراد این باشه که من صابقاً اشاری کردم ابن حض این رو تحمیده که ما بیهیم با مشورت مثلا امراه هم شورابه هم با رد با خیاس بشین جهل شریعت بکنی اگر این باشه خب این صاحبا این دعیل برشانه بگه دعیل برخلافش داریم. این اصلا اینجور خود نام آنون رشن اینجور مخلحت در این فرض برگشتش به همه خیاسه. این فرقی با خیاس نداره. که خیاس تمام همه فروح اصولش در شریعت مقدسه به نظر اهل بیت داره بارت احل بیت نفر شده. حالا برای یه توضیح بیشتری هم بعد ایشالا از این کنم که شاید روشنگ بشه که تمام به اصطلاح این موارد رو دیده این استحسان و و ایشان مرموم ملا محمد امین اوگرده یه چیزی دیگه که هم احلس کنند بازدارن ازش تحبیر شده به صد و زرایه ایشون هم اینجا اوگرده است. در صفحه 382 از این کتاب البحر المحیم صد و زرایه هم اوگردن و این صد و ذرایه در یعنی وسیله صدن بستن این مرادشون اینه که ما اگر حس بکنیم که مردم به اصطلاح ماها با یک کلا با یه بیله شرعی با یک کلا بوداشن سرح میکنیم بیگه که حرام برسن این باید برداشته بشه این بیله نیست. این صد و ذرایه شرعی یعنی بحثی ریالی ما داریم میگن مثلا فرز زنگنه بده مثلا یک چیزی رو با پول بدین تا پول بهشوشید مثلا ربا انجام بدید این رو میگن اگر امر قرض کردنش جایز باشه چون منتهی میشه به ربا جایز نیست و مثال معروفش هم مثلا بیع الینه هست دیگه اونا صد و بفن حرام. از تو ربا. تو اون ربا صد درصت ضرر گفتن حرامه اصل ربا ما بده که بود اون بیع الینه اینه اصلش هم الا غیر از اینکه جز صد درصت ضرر از آیشه نه روزه که گفته جایز نیست حالا من شدنی مخوازم بحثش هم بشن به خصوص از آیشه توی نظر این خودان این همین مثال معلوم کسی بعد به شما میگه آقا من این فرش شما رو می خرم نقدا به 70000 تومان 70000 به شما می دین شما خودتون از اون می خرین تا دو ماه دیگه به 120 رو تن خب عملا شبیه دو تا بیه. دو تا بیه. نه یک نمیگه نمییه تک توند بهصد بیزار تومنه میگه ن ازده این ما در رو ما ازش تف به بیال اینهچه بیال این اصطلاح دیگری ای هم داره و که همینه به رد من هم مه دلیل ل فرمت بیال این هم حد دو ذرائق گرفتن یعنی اونا م گفتن ظاهر اطلااق هایات درست اهل و آل بگی یک من فروختم فرش خودم رو سر هزاراد من نقد هم می دره بعد این پرشونه که طرف مقاضر شد از ایشان خیلی هم به نسیم دن به سر ویز اصلاحات اطلاقات اختزام میکنیم اونا از چه راهی آماندن گفتن باطله گفتن شما با این بیعتون رسیدین به این نتیجه که ربارن چون داریم تو تومن داری و بعد از دو ماه سر ویز تومن این مسئله یه سد و یکی از مسائلی بوده که هست کردن به لحاظه تاریخ این مسائل به خصوص که از زمان آیشه مطرح شده این چون در بلایات پیغمبر نیامده رجب این و این راهی بوده داری تمسطکه به اطلاقات تا با تمسطکه به اطلاقات به حسب ظاهر و بعدی از محرمات اباهه بشه این رو تصویر که تصویر کردن به صد و ذرایه ایشون در اینجا داره زهر به مالک ایل من این صد و و هیل مسئله سلطی ظاهر و ظاهر جایزه ظاهر جسده ایه و یتبه ها الى فعل ممنوع ممنون فعل حرام و مثل احیابیه از به بمعته الى عجم کالا سلطه کالا کالای رو تا مدرزمانی به صد و تومن مثلا میشه و یک به 50 نقدم هنجی ها توانم نردن او رو ازش بخره. به اکس اون مثالی که من و قال ابو حنیفه و شافیدی بعد مثال دیگر بزده لا یدیو ظلمن و منصد زرایه شافیدی و ابو حنیفه هم نعرف. گفتن که نه اشکال نداریم بیونم به اشکال داره و بعد برمید لا یذل من و انصر قلنا لخشان خود به کسی که مالکی راه ها رفتن برای مطلبی که در کلام عایشه است که یکی نوشته به قول او ده مائری بک الا مالای احتیاط به اسارت ساز میکنه یکی هم تمسک کن به عمل لا اله یهود اون حدیثی رو که ذکر کردند در میان اهل سنت معروفه که خداوند بر یهود دومبه ها و حرام کرده اون دوستا دومبه نکشوشین اینا اومدن دومبه رو آب میکردن روغن میکردن روغن نمیخوردن می <تصفيق> خود دومبه را خراب میکرد اصلا واقعا خرابت اجا اینه واسه یهود حرمت علیهم شو... شوه اون سجملو جنلو مذکر مز... به سوی سیره... به ذمیر مفرد مذکر هم هم هست تفسیر در اینجا معنای رو آب کردن کی <تصفيق> <تصفيق> یعنی اون دوبه ها رو آب کردن به اصلا روغن کردن و با او ها و اکل و اتمان ها این هم مسئله‌ی صد ذرای البته بعد یه مقداری بخصایه چی گفته نگفته به رضا مثلا خالر قرسوی و صد و ذرایه و هده مالک و اصخابو و خالفه او اکثر و ناس و عمل و علیه که اکثر فروعه هم مالک مخالف هست اما اکثر قبول کردن زرا... قبول چون اون وقت این صد و خوب دقیق بکنید بعد خودش میگه توضیح میده که چی میده بعد چی میده بعد میگه قال اون آقایی که حالا اسمش داریم که قبل در گذاریم کنو بله آز فه امن من از ذرای ماهو معتبران اجماعا بعض از این وسیله ها قطعا معتبر کلمن امن حفر الاباد فی طریق المسلمی کسی در راه مسلم ها چاه نکنه خب ماشین ایشی تو شام یکه بلی و سب اسنام اصنام اند من یعلم من حالیه انهو یاسوب الله مثل هیرو بله شون در قرآن دارند ولی تسبب الله ویی از اونو فهمیدنون الله فرست ببلاه عدل دارند اسنامشون بطور شناسه بد نکنی که مدلش این که یه و من ها ماهان یا اجماع که قطعا شاید مثلا کسی ازدواج نکردش اذلاعش بچه دار میشه بچه دار بسون ممکن بچهش قصد بیشتره یا مثلا درخت نکرده کاتن میگوشه که ممکنه ممکن است دیگر نمیگوشه شراب کنه مردی و منها ماها مختلف نکتی این نکتی رو که ایشان در اینجا نرقی کرده این ایک نکتی لطیفیه نکتی نکتی دوستیه اونی که معتبران اجماع، اون مقدمه حرام یعنی این بحث صد و ذرایع رو باید بحث منتظر شده بحث مقدمه حرام و بحث اعانه بر از من در همین بحث اخیل توجیه هستند خیلیتی بود بحث آنه بر اسم و به حرمتش رو هزارات تو بحث قوال فقه بحث مقدمه حرام رو تو اصول رو که از کلم نقطه فرمی شدن چه نقطه فنی داره؟ که یکی تو اصول رو بردن یکی برده. فقه رو بردن اگر مراد از صد و مراد صد مقدمات حرام کنی درسته شون همچنان که مقدمه واجبه و حق واجبه مقدمه حرام هم مراد از مقدمه حرامی اون جاییم که الگاه شده چون یعنی بسیار جمعه زریع بودنش و جمعه وسیله بودنش رو نیست مثل کاشتاره در رفت اما این مثالهایی که ایشان زده که اگر مثال مثلا به اینا انجام داد نتیگه تنین میشه انصافا اینها تا به بست مقدمه حرام یا آمانه در اسم نرسه دلیلی بر غرمتش وجود نداره دلیلی بر انتقال حکم اثبات حکم با صد زرایه وجود نداره و سال الله و کلی از مطلب انشاءالله